درود بر الله علیه و و راجب آیه روایاتی که در تفسیر صبح وارد شده بود متعرض شدیم یه اشاره اجمالی از کردم برد ببینیم در سوره ماعده که این رشوی در حک یزره کدوم آیه در سوره ماعده آیه به اصطلاح چهلو یک یا یوه رسول لا یحزون که من و ولم من و لمطم هادو یهود باشد آخرین لم یه. یک به یهود در در آیر چه دو سماون دلکدر به او که فحکم بین که احتمالا این آیه ناظر باشه به مقام حکومت فحکم بین هم این آیه چهلو دوی سوری مبارکه معایده بود که کلمه سه تا آیه چهلو چار میفهمانی انا انظرم تورا فی ها خودن و نور به هن الذين الازین زین آنها در آیه و من انزل الله هم او اون سؤالی که بود این بود آیا این رشه در حکن جز اون آید یا رشه در حوق زلی این آیه و من لم یه به ما انزلالله با اولایت همون کافرون هر دعایه در یهوده هر دعایه هم در یهوده این نقطهی ای که پیش آمد این بود که در بعضی از تفاصیل این جواب اکانون لصوت یعنی اجر خواهی و من لم یه به ما انزلالله یعنی رشوی درک. باز در مقابل قول بود که نه همون اکارونه لسورت اون اجر بازیه اون اکارونه لسورت اجر. برایش این رشه فرکو این هم از موارد که خب در خود تفسیر قرآن بحث داره چون بعد از این قصه و من لمیه به ما انزل الله فعلاه کمون کافیم که یهوده بعد سبود و قفه اینو علا آثار آیه چمیشی به ایسد مریم اون سب دقنده ما بین یهده ی همینه تورا ان انقام آیه آن 47 و من لم یخکن به معنظرل الله ف اللارکن او فاسمون در زیل ی و به اصطلاح مسیح بعد حضرت که پس تورات بود در من لم به ما انزل الله یکی انجیل بود در زل شما و لم یخکن به ما انزل الله و اللا او یک کل اینا انزل نا ایلی و انزل نا ایلی کل کتاب بر هر دکارت نیستن؟ و انزل نا کل کتاب بر هر مبشر مذل نه؟ یک دیگر در وسط بود دیالومه که آیه شلوپانج و من لم یه کلمه مانند لام فاولاد کوهمو ظالمون سه تا عنوان وان کافرون و ظالمون و فاسفو از عبدالله مسعود هم نرمال شدی که وشی در هکمی سه تا گرفتی. دو روایات ما فقط یکیش آمده من لم یحکم به ماهنزلالله الله اولاک همه کافرون اما از عبدالله من مسئول نه هستوی که راجی به رشده در هفت هر سعیه رو خون فا اولاک هم کافرون همه ظالمون رو همه فاسمون هر سع راجی به رشده در هفت اینه که من دیروز عرض کردم این نکته هدیش اینه که ما رشده در هفت رو از کالونه لسوه دو خود رشوه در حکم سخته پس بنابراین این مسئله یه عجر و موزی که قاضی میگیرن به اصلاح موزیمون میتهم رو باطن بکن این جزبه سختی نیست اون رشوه در حکم سخت یا بگیم نه اجر و جزبه سخته اون رشوه در حکم و من رمیت به ما الله مربوط به اون یکی میشه نوبت به اون حساب است این طوریه اجمالی بود که من بیرون چند بار عرض در سیاق آیات من فکر می اونی که بین علما و مسلمان ها اختلاف نظر اول از صحابه هم مطرح شد در حقیقت این نکته بود که این جزء کدوم میشه حالا بعد از این روایات که بعد نقطه شد. از این اون نکته تفسیری روشن شد شد تا اینجایی که ما در روایات داریم در باب سحره مجموعه روایاتی که در باب سحره داریم یکی دیگه هم به اصطلاح اینجا بخونیم مرموم شیخ بخونیم که باید جمبردی انشالله بکنیم مرموم شیخ صدوب در کتاب سحابال احمال من فیلن جامال احاده سفه سی 2313 از جلد 22 آیون اونجا مراجی قال حضرت سنی احمد ابن ادریس ابی پلر ایشان احمد ابن که از مشایخ بزرگ اصحاب ماز استاد کلینیز از, از اشایره قومه ان محمد بن احمد صاحب کتاب نوازرالحکمه که کرارا اسمش برگی ان موسد نعمران بعد نیست به نظر نخیر باشه ان ابن سنا این ابن سنا در اینجا مراد محمد بن سنا هم به حسب طبقه و هم به حسب عبل جارود راوی معروف کتاب عبل جارود همین جناب محمد ابن او اصولا مقدار زیادی از میراث خط قلو توسط محمد ابن سنان تخصیب شده پخ شده یعنی توضیح شده و نرشد شده من سابقا کنارا از کنم یک تاریخی داره های علمی خط قلو. حقیقش خیلی لطیفه ما از کردیم که خط قلو اگر راست بشه بانه علوهیت باشه علوهیت عیمه علیه مسلمه این هم سرشینی که در قرآن کلمه قلوب آمده یا احلال کتاب چون کلمه قلوب در قرآن آمده این منشه اینشون هم قائل به علوهیت هر ایسا بودن لذا در فرهنگ اسلامی وقتی میگفتن قلوب یعنی اعتقاد به این اینه اگر راست باشه که زمان امیر محمد عبدالله سوای یا کس دیگر قائل به علوهیت امیرمون اگر نقلای که شد راست باشه اون که در اون زمان بوده برتر هم واقع خاری داشته باشه اما انعکاس علمی نداشته اونی که تخیم اسمش رو علمی بگذاریم اولین نوشتاری که ما به اصلا رسمن از خط و گلوه داریم از مثل جابر بنیادی به جوفیز که این هم نه گلو به معنای مثلا اعتقاد به یه مجموعی کارها بالا بردن شعنه یا مثلا پس این نوع تغییر قرآن یا تغییر قرآن درجه این در مقدمه این جابر ابنیزید اینقدر مهم بوده که در مقدمه تفسیر های مسلم اسمش برده یه حدیث نعم کنه که تفسیر کرده این اینها رو خط قلوب می اولین میراز های علمی ما از جابر است و از مفضلت نعمر هست و از معلم نخونهی پس مفضل رشت بیشتری قیدار میکنه و کتاب جابر هم تا مدتها موجود بوده اما رشت بیشترش مفضل اما اون میراث های خط قدر دست محمدت سنانه این تاریخی در ذهن بمونه که اولش از جابر رو مثل پرسویم به که مفضل نخونه رو معلم نخونهی شروع میشه لیکن اون جش محمد از نسانه ما دیگه از محمد از نسانه بالاتر نداریم لیکن محمد از در این حالی که از بزرگان خط قلوب و حافظ میراس های خط قلوب هست در این حال چون روایات درست هم داره و از مفضل سری نهر کرده یه زیادی از میراس های ایشان ترسط بزرگان ما نهره شده محمد امام در کوفه بوده یه مقداری از میراثش اون به قبه آمده حتی اون راوی و تاریخ بزرگار با مروه احمد اشعری هم ایشو نقل می‌کنه و این منشأ میشه که یه مقدار از میراث های خوب محمد ابن سلام به حساب تصریح بشه یکی از میراث هایی که محمد ابن سلام برای ابو جاوید زیاده نمود این از بزرگان زیدی هاست الان اصلا رسما به اصطلاح مذهب جاویدی الان خود آقایان یمن قالبا جارودی هست اسطلاحا خودشون رو یعنی در یمن حتی زیدی هاشون ادهشون به اسطلاح خودشون اسطلاح یعنی صالحی حسن بن صالح و یا جارودی صالحی مقداری به اسطلاح خارقه اساسی شون یه مقداری با اون خلافا بد نیستن سالحی یا جارودی یا نه مثل ما ها سر به خلافا هم میتونن اولی و دو در که خود جز اصحاب امام باقیره اوانل امام صادق هم بوده با امام زید که قیام میکنه شون دیگه با زید میشه وقتی که زید قیام میکنه عبالجارو با زید میشه و جزء زیدیها ها میشه دیگه بعد به امام صادق رو نمیاره لذا روایات عبالجارو از امام صادق کنه دقت کنیم و که عبال جارو تا بعد از امام صادق زنده بوده لذا محمد عزیزمان ازش یعنی عبال جارو وفاتش مبین 150-160ه حال دقیقه هم ما نمیدونیم این که مثل محمد عزیزمان ازشون یه مقداری میراسهای عبال جارو توسطی ایشان به ما نسته میراسهای عبال جارو اساسا از امام باخره یه مختصر یه عبال جارو 114 یا 114 یا 114 وفات امام باخره تا 122 یا 122 که قیام زیده این زمان امام صادقه یه مختصری از امام صادق داره اما بعد بر میگرده به زید به دیگه از امام صادقه را نرمه میکنه یکی از سنوات از امام صادقه در زن میانبارد شده بازر به این جهد انه از جاور انه سعد الاسکاف سعد ابن طریق ایشون به نظر ما سغرس بردینی انه از وقت از اجلای از خواب سندش به خاطر ابن سمن دیگ داره اما که چون در قوم آمده و قبول شده پیش شوم یا شاید بد نباشه آن امیر المؤمنین. انسان توی دختر قلب بوده که نه من خط قلب من از کلمه ی خط قلب سیاسی هم داری. اول جارو جز خط قلب سیاسی هست. تو زدیه دیگه. اول جارو جز خط قلب سیاسی. قلب سیاسی این بود به حرکت مسلما خود عبود جاوز زیدی است چون قاله به حرکت مسلحانه یه مقدار قلوب هم در حقیقت همینه مثل مفضل هم به نظر ما همینه نه اینکه این, که این ما عرض کردیم یه خط قلوب و اساسی داریم یه خط قلوب که لبازه بشه یه این خط قلوب اساسیش یا علوهیت همه یا فستی که انجام میده ادهشون بودن و علوهیتی نماز روزه نمیخودن محرم انجام ان چه شعار معروفی داشتن اظهارات امام پس نماز شه امام که شناختن ما بکن نماز نمیخوندن حتی در ایرادگی زنای با مها را میکرد میگفت غیر از نماز عادی چرا وقتی خود همین اینم یه نوع خود مفضل بش نشه صد در صد نماز نمیخونه اما فکر نمیکنم جوششن مفضل جلل اعظم یه خود مفضل با این جاده قدیش یه دستی در کشی نمیکنه که صبح هر وقت شب نماز تو سفر نماز زدی نماز صبح نفهم. خب یه شنی شنی این بوده این مشکل بوده یه لوازمش بوده از لوازمش قلوه سیاسی بوده آخرین از با هم جمع شدن. هم انحراف سخی داشت هم انحراف عملی داشت یا هم داشت مثل اول خطا اول خطا بود اصلا در گیامسالان کشیده بود یه با هفتاد نرالز از شد با شمشی یا با چوب در کوفه و همهشون همونطور کشته شدن به است ابی خلیج سال مکن. به با خلیج اون هم تو مجموع گدل شهر شب ترک از میان خوشته همه تمامشین کشته شدن، این یه خفی دا این ها ش منشک شد و در در یه جاازی دیگه هم بهجا سال میشه وقتی یاد خقللوبه کرده از خ همین قللب به اصطلاح سیاسی و اجتماعی و بیشتر هم همین سیاسی و اجتماعی، و مشکلی که ما وارد نشویم سر میراث های اوست یعنی ها که اطلواظ بشه اینکه این خط و قلم بودن خیلی رو میراث های علمی درش نمیذاره یه مشکلی دیگه غیر از آن سیاسی اونو که وارد بی یعنی الان هر در از اعضا سیاسی هستن اصلا اصلا کار به کار علمی و در این موقعیت مثلا ثابت باشه نباشه نسخه چی میkona تو با اهداف دیگه مشکل ابن سران و درباره ابن خنا دار روایاتی که مقامات خاص مثلا همین راست پتروس و اسامی نشقابل ابن خنا چند تا سند درباره راست پتروس که معروفه قرار میگن این چند تا سند داره من حسن در ابن خنا کش دیگه نامه نشون گیره قولو به این یک دو مشکل ما با اصلا ما چون علی ما با خط و قلم نمیخوایم نماز رو نظرش و طلاق بدی داخل بکنی مشکل ما با خط و قلم اون مشکل میراث اهل میشونه. شود. از ابن سلام نهروشون، من هر چیزی گفتم، انفلاج هم نه همه و نه همه بچاده رو دیدی که اون سه و خب خیلی مشکل کاره؟ میگه نه ما یک کتنه ای تمام نشود. یکی از علاوه نه که این خط بولو به بشه، نه این که یعنی این فردا مثلا در لا بالی باشه. این مطلب نه که تمام اینها بچاده. مثلا ممکن است یکی از ارزجاو در کجا بچاده؟ از نشید مشکل محمد بن سنان عدم در مبانی حدیثیه یه مشکل دیگه هست که به نخودس سیرت داره نرفتی به قلوب و داره نرفتی به قلوب و عملی داره اینا چی شده نیست فرمودن ایو احتجب ان یوم اول المنتجب عن حوائج ناس المنتجب لاحا عن یوم القیامه و ان حوایج هلا و ان عقد هر كان خان حلولا هدیه هم بگیره غلول به ناخد رشوتا فهوه مشرکو این شاید داره نازل باید و با من لمیحکم باشه مسئله یه گرفتن هدیه از امال مسئولین دولتی و کسانی که کارمند دولت هم این یک بخش مستقبی سید که بخش رشوت اینشالله این میشی روایات زیادی اهل سنت بیگنه دارند که هدای یعنی امال غلولون. این هم در بین ما این سنده اما بین احل سنده اسامیل زیاد داره و این مقدماتی هم داره اینشان با اونجا توضیح به اونجا اما این وقتی در مانه نفیح نداره چون نه سواب نه شامل به اصلاح توضیح نده که این رشه مراد اجرته یا مراد از رشه در اینجا نیست و مراد همون به اصطلاح رشه برکب از جمله روایاتی که هست روایاتی که در کتاب جب یا این رو که من حدیه بگرده اون رشته هی دارم حدیه گردن هر دوشه میخوریم این تون تشریص بگیم این تون بگیم مراز رشته در حکر یا مراز عجرت در سخته 215 از کتاب جعفر جعفرد محمد شوره حضرمی کتابی بوده اونها به جاده پیدا شده مجموعش اونها اصول ستا تهشت چاپ شده ایشون از مسترده که نرکنه خب کتاب چاپ شده به اسم سقسود سپاده اشت یکیشم کتاب همین حضرمیه جعفران محمد از نشوره از عبدالله ابن تلهه خب طبعا این کتاب چون من هم اجازه از عرضش علم میشه ایمیل پایین و این آوارم نمیشنسی قرار عبدالله نهو قار منعکل صحت صد اطول از رشت و طفل حق اجرت نیوارده رشت و حقه و محرالبقی درات سنیان هست و عجرالکاهن این هم در بعض زرادشت صلی و ما هم هست و, سمن و کرد ما هم داریم و لذینه یابنون البونیانه علی القبور این ما نداریم و لذینه یوسالرنه تماسی اینم نداریم و جوایل تل اعرابی اینم ما نداریم جوایل مثلا فرض کنید توی مثلا لباس شدی شو آبخورد و هر کسی داره دیدن ولی شمید مثلا از با از این مثلا اصطلاح مامهی دهاتی و عربی رو میرفتم در میروه این جایه دوشید برد این هم را که بیدیم باید که این هم رشوی در بکنه تقلید فرمولی این هم رشوه. در مجموع در مجموعات بیانم رویه این نبیه این نصور حوال رشو تا فی الهوگ و حوال مسعود الحسن که دیروز خونده شد در خدمت رو کنید یه روایت دیگه ای در صورت چون رفتی به غذا نداره بعد دو مرتبه انشالله اونجا متعرضش نشید این تا اینجا مجموعه ی روایاتی که البته من گفتم در جفت قروضا نمید یه عوایت هم از فقروضا خونده است اونم عرشت رو پر حکم رو پرار داده نه با کفر بلا کفر بلا حالا برگردیم یک جمع جوری از روایاتو خودمون بکنیم مجموعه روایاتو خودمون یک مثل اساسی در این روایات ما اینه که آیا اج رسول قاضی حالا ایرده به طور مطلق جز به قرار داده شده یا نه این سؤال احلاح هم از این روایاتی که ما در باب صحب داریم یه دستبندی صحبه هم کرده بودیم به عنوان این که رقوس اصلیش یک روایات امار ابن مروان در نصه کافی نداره در کتاب دو کتاب صدوق خسال و معانی الاخبار داره حضور الخضار به داریم خود مردونه صدوق اون روایت در کتاب تقریش نمی این اینا خیلی عجیب و من فکر می کنم نکته داشته نیورده در خسال آورده در معانی حضور الخضار حضور داره تو واسه اما تو متن کافی نلریه طبعاً چون مثل کافی نداره، تحلیلا نداره. صدوق هم در تخظیم اون روات نایوارد. دقت میکنیم؟ در ساقی چیکار کرده؟ یه مجموعه ای رو جمع کرده به عنوان سفت که از روات متفرقه است. در اون مجموعه اکثر صرف چیزها، اجر و زامیه سفت و سنوال کله سفت رو قلط می‌کنه. باز در اینجا اجر القاضی این روشن شد که چرا صدوق روایت عمار مروحانتون فقیه چقدر این مرد دقیق بوده دقت کردید؟ چون با مطم کلی که ایشون قبول نداشته اون مطمی هم که خودش داشته توش اجورال غزات بوده اجورال غزات قبول نداشته تو این مطمی که خودش ایشان مجموعه روایات جمع کرده صحتم صحتم سهم مرد شاصل حکم اوال کف به این به این ورده خیلی عزیز چقدر این مرد دقیق نظر بوده کل صدو رضوان الله تعالی پس در روایت امار ابن مروان اصلا نیامده این یک. دو مجموعی روایات ماله به اصطلاح سکونی چون سکونی هم چند تا روایت در باب صوت داره در روایت سکونی که اصلاحه دیو در دیده به بعده و فلحق آمده عجرال قاضی نیامده در روایت سکونی هم ارشت که کلینی هم این مطمئن رو برده. یعنی به عبارت واضحه اصلا کلینی مطمئنی که اگر رو بادیه نایورده خلاص در اونش یکی هم روایت سکونی که درش ارشت شاتوپل بکنند یکی دیگه هم در ما نحنفی روایت سماعه هست اون هم از روایت اساسی است که درش در باب صحبه در دوواث تمام که موتونول مختلف در از صفح تا 13 آمده که خوندی اجرور قاضی نیامده آمده بهواشتمه رو که کل هم یک مننش اوورده اجرور قاضی نیامده. تو یک مکننش آمده و هم مرب شااف و شااف هو بله فوارد کپبلله این آمده، اما اجرور قاضی نیامده این؟ روایاتی که تا اینجا اساسی کاره و اما روایات دیگر یک در روایت امارم مرمان آمده که ازش مشکل داشت و از همه شما همه تر تو جعفریات آمده اجرالقاضی اونجا آمده توی روایتی که امروز خوندیم از مسترک از کتاب جعفر اونجا رشوه آمده توی یه روایتی که دیروز خوندید که از اونجا هم از رشافل آمده و یه روایتی طولانی هم هست که انواع محرمات روزه شده اونجا هم اجرالقاضی نیامده پس بنا معلوم شد که سه تا از بزرگان قدیم ما مرحوم کلینیم و مرحوم صدوق و مرحوم شیخ توسی روایتی که توش داره که عجرال قاضی صحطان نقل نکرد این خلاصه ای مطلب خلاصه ای مطلب اینه کجا داریم در یک مطلب امارم مروان داریم و در روات محروف جبری ها از واسه که کلونی زبانه آمدن کتاب به کوفه بغدا لیکن شیخ صدو و شیخ توسی بعد از آمدن کتاب این ها اصلا نرمه کنجرد بگیار این راجبه این مطلب که یک مقدار روشن بشه که این چه زمینه های یاشید اصلا که این مسئله صبح تو تصالفه الان من از یهاشت یهاشت احادید جوابه بکنیم یه حدیث معروف در باب رشوه هست که اصلا زیاد شید امراشی ولی مرتشیف نار یا ار رائش یست آبینه همان لعنن لاغ راشی و مرتشی و رائش کنه همان هلذی ما همچنین رو... رواست خیلی محبوبه و در کتاب اهل سنت بحثانید فراغانی نقل شده این که بیه ایک سند رواست با من این نقطه رو الان این حدیث با این که خیلی مشهوره من از که کله این حدیث رو در کتاب بخاری در کتاب چیز در کتاب بخاری و مسلم روایت را خیلی عجیبه در مصادر بعدی چون غیر از این کتاب در حال تا آماده در مصادر احمد کرداش اتفاقا با هم در مصادر در اینو کرده در مصادر اما این حدیث با این که مشوره لعن الله الراشی و المرتشی در دو کتاب معروف اهل سنت بخاری و مسلم ندارند در کتاب ما هم اصلا نیست تا خیلی عجیبه این حدیث همین بحثی بود که سابقا عرض کلی بعضی از احادیث که خیلی مشهورن در روازمان ما میکرد که از کل نوعی برجیده میکنم شاید نکسیشی باشه امّا اتفاقا من با ایشون قبولش داشتم اینم میخوام بیام میکنم اینم میکرد نمیکرد ما تا دی بحث تفسیر رو مطرح کردیم همونطور مشکل داشت یه روازگم آخرینم باز بحث کردیم هم نیم همین مشکل داشت که پیش آمده به ولی سعی آمده پیش ایجاد میکرد. یکیشم لعن راه و راشی از مرتجی پیش ما اصلا نمی در مسادر اهل سنت و اصلا در صحیح آمده اما در تو کتاب معروفشون شون یعنی بزای اجایبه یکی صحیح بخاری و صحیح مسلم نمی در صحیح بخاری یه بابی قرار داده در اون بابش یک نکات رو برده کنم خواه مرا عرض بکنه. باب عنوانشینه باب و مایع تا رقیه الا احیاء العرب اصطلاح هم همی که ما مفاضلی و عجیب و غریب مثلا میگیم این کنه ایده بودن که کیمیاگران کسی مریض بود چیز یه دعاهای خاص یک نغمه خاصی با یک لحن خاصی که بعضی بزنند بعضی هم دروبات ما ما این اینو رقیه میگن یا چشمند یا تعویذ میگیم با و اینی که در لغت عربی اش در بعضی رادی از بود این این یسترقون نکنیم ما یکی یسترقون داریم اون از رفت به معنی عمده کانو یسترقون مثلا بچه رو یعنی هم میگه یسترقون یعنی روغیه میخوندن این دوتا با هم دیگه تعال میکنه از بسی یسترقون هم داریم که افتعال باب سرگت باشه برای بعضی از عرب ها به فاتحه تو کتاب روغیه خوندن در اینجا داره وقال ابن عباس انه نبی صلی الله علیه و آله و, علیه و سلم فح قوما اخذت عليهم اجرا كتاب الله این به این از ارده که آیا اخذ اجرت در همه جهات جایز نیست یا هست این به این یعنی چون یک روابط دار مفصل بعد داره که اینا راستن در جایی و بعد میگم مهمون نکردم باعثشون مریض شد هر کس خوب نشه بسا من میخوام خوب بشه شوک ازش رحم خوندن و خوب شد از اون پول گرفت پس اصلا اشتباه و قال الشاعبی لا یک شرط المعلم الا ان يعطى شيئا فل یقبل بود. ببینید از اونجا این بحثی که من مطرح کردم توش هم دردم که یعنی دانشجو اجر الطالب بود اجر معلم بود چون کذا اجر سثار بود اینا آمدن متعارض شده. و قالم حکم هر کلیه لم اسمع عهدا كره اجر معلم. اگر معلم بخواد پول بگیره تعلیم بکنه چیز و چیز داره و اعطالحسن یا اعطالحسن دراهن عشر ده درهم بشدن ولم یربنسیرین ابن سیرین که اون مثل حسن اول از تابعین هستن در بسرم بودن به عجر القصام به عصر لم یربنسیرین به عجر القصام به عصر مراد از قصام یکی از شؤون در سال اصابت به زمینی بود دینه ورسته بود یکی کسی رو قاضی میفرستاد که اون کارش قسمت بندی بود چون قسمت به زمین یا درخت یا قسمت ساختمان خب مشخص بود دیگه مثلا این ساختمان رو باید مثلا به 8 سن تقسیم میکردن 3 و 1/4 در دارین یکی از کارهای عمر قاضی قسمت بود توی دوام نشه لوگه اولش اونها داشتن کتاب این شؤون این در حقیقت قاضی نمیشته لیکن من اندام خودم تیم یکی از شعون قضاقته لن یره به اجر قصام بحثم و قال کان یقال از صحت و ار رشت و طفل پس معلوم شد که از ما اول بحث بوده. که آیا این عجر صحته یا از همون صحبه به سا در لحکنه و اگر یادتون باشیم ما همون رقاعت مجموع برد خونیم رو بیه امن نبی امن نساس خور اون رقاعتی که ایش رو نویش اینه لحظش اینه کل و لحن امن بطنه ها صبح نارو اولا بگی هر گوشی که از صبح رویش پیدا بکنه مسیرش با آتشه قیلی یا رسول الله و من صحب قال ار روش یا تفرهو مجموع به نظرش دیم بود و, و روی یعنی نبی ارناو قال از صحب ار روش این چرا آورده ابن سیرین گفت کردیم ابن سیرین روشبه لفهو رو در مقابل عجرال خصام آورده پس نیشه از این فهمی که به مثل کلینی مثل صدوخی عجیبه صدوخی عجیبه صدوق مغید بوده اجرالقاظر جزو صحب نیارده صدوق با اینکه که صدوق اون روایت نهار کرده از اما قیرزده راه نداریم چون کلیمی و شیخ بدون اجرال قدور رو اون روایت که داره من ها قدور رو گذاته منترزن صدوق نهار کرده در معان اخبار داره کتاب شسال اما خودش که جمع کرده در تغییر چند تا روایت رو برده باز اجور و تو صحب نهارده دو سه تا روایتی دیگه هم داشتیم روایت سکونی را در سماه که این هم روایت جامع صحب در تو اونا هم نیامده تو یکیشون روشه فلحق برده یکیشون روشه فلحق ول که رو این خواستن زمینه کاربرتون روشن بشه که لحث این بود آل کانه ی از صحبت و عرشت و بعد وکانو یا اتاونه علال خرص خرص با خواب و صاد و خرص خرص توی شلوم هم دادیگه یو سهب و الخرص خرص باید در لغت عرب به معنای تقدیر و فرض اصل کلمه خرص در لغت عرب معنای و اصل لحظه دیگه هم داره که اونم قایی به کار هر حضر باهای حدی و زا افتر را و آخرش هم را حضره ها ای قدره ها خمنه ها تخمیم که از که منان تو ایرام حضوره به معممه میگه انان تو ایرام حضوره میگه حضوره معممه اونی که افتیاج به فکر داره به اسطلاح این از همینه مثل چیستان با قولیشون معممه رو به اسطلاح حضوره میگر. و این به معنی تقدیره مثلا در زمان صدور که بعد آمد این حدیث بین اهل از زیاد شد چند تا مجلس اندا رو در بغداد میشن مثلا فلانی اومد اینجا مجلس حدیث گفت بعد حضور جدیتی زیاد بود ظاهره که فحضر و المحذروا اونجا با حال و همیزاز است یعنی تخمیل زدن تخمینش اینجوریه دیگه مثلا میگه هر متر مربع به اصطلاح ما مثلا یا مثلا چند مثل چند اینجای امروز اینجا در این، حاضر شده خودش اینطوری بود فحذروا مکان و قدره هم به عشرت آلاف ثلاثین افتیلی عزیزی یک مجلس حدیث سی نفر مثلا برای سماه حدیث آنوندن از احلیه در کتب احل سومت نهر شد و کانون یک تون علال خرس اینم عشیون حکومتی بود یکی عشیون حکومتی این بود من توضیحش شهر کردم در قبل از اسلامی یعنی اصلا قبل از اسلامی یکی عشیون مالیاتی بود اون شمش این بود میوه‌جات جاست خود دخش بخوادید نه ذراعه نه کشابلدی نه زمین درختی میوه‌جات اون میوه که میوه از برگ ها جدا میشه که دو تا بوده از این یکی خورما بوده که و انگور چون خورما و انگور جدا میشن مثلا سی پرتقال این لابلای برگ هاست. اون میوه که جدا میشدن این رو خرس میکردن یه میکردن به این صورت که مثلا فرس با مثال وقت رسیدن خرب انگور انگورم که مالیات نمی گرفتن کشمشی گرفتن وقتی که قوره می شود. چون اول یک چیز مثل حالت گلمانم گل می ده گل می میریزه تا قوره بشه وقتی که قوره شد می به باقه انگور سر میزدن زدن مالیاتی دولت و دخترهای مالیاتی هنگاه بود مثلا میگفتن این تاکستانه که این آقا داره اونا نگاه میکردن چه انگور جدا میشه مثلا بودن شما که این مقدار زری، این قوره شما ای دیدین قوره حساب می‌کرد که این فرار نکنه از مالیات وقتی که یه انقاض طلا بود بود و بود شما مثلا فرض کنید اگه این بخواد انگور بشه فرض کنید 18 تن انگور بشه تا بخواد خورما بشه خوش بشه 10 تن خورما یا این مثلا 20 تن انگور میشه وقتی گفتن 20 تون انگور مثلا 5 تا مال شما مهمان میاد نیچی مید بچه ها میان هیوانات میان میخورن کسی مفتری چیزی میخوره 5 تونش کم میکردم 15 تونش رو حساب مالیاتیش مینوشتن برای اینکه بعضا فرار از مالیات رو خرص داریم قال و کانو یا اطان و علا خرص این کسی که میابد خرص میکرد این کسی که میابد اندازه میگرد به اون پول میدادن نخواه بگه اصل اجرت ا این در این کتاب بخاری با بخاری یکی عهد اجرت در کتاب الله مثلا میگه من اک... مثلا میشم بعد هفته تا هر حال خوب بشه این اشکال داره اجر معلم اجر کاخ و اجر به حساب خارج ده ده مورد مولد بخاری روشن شد این چند عنوان اینها اجرتش اشکال نره قاضی رو ذهن نگیره لکه رشوه رو سوط رو رشوهی کنه حکم گیره. اجر القاضی رو نگرفته. احتمال دو موردی که ایننا بوده که اجر القاضی اشغال نداره. اینا انما صقل بوری جلد شکار فصلی که یکی از شروح معتبر اینصفان بخاروی خیلی کتاب نافعی کارش هست این در کتب ما هم نوشته شده. 372 تا 73 ایچون در اونجا متعرف شده البته تو بحثی دیگر داری وارده بحثی اون میمخواه شد از کنم که برای تطوری برده یه تحضیبت به سامش تمام شد معلوم شد که این مسئله عزرغازی به یک سندی که ما بهش وسوخ پیدا بکنیم سند معتبر داره نه که نداره سند سریعه لیکن یک دیر این سند معتبر داره که نه صدوق و برده بهش عمل کرده نه کلی کولینی که واقعا در این شعنه بود کرده وقت در این کتابی هست به نام تفسیر ابن بزنجری تبرین بسیار تفسیر خوبیه هی. که خیلی بشتر جه نشده به این چاپ همشون دارم چاپ خوبی نیست اما شیدن شاب تحمیلی خوبی شده انصافا خیلی کتاب است در این جلدی که الان من دارم جلد شش صفحه 154 به بعد، در زیل آیه اکالونده صحب متعرض شده یک توضیح این داد حالا من میخوام با بحث باشم و البته از, از این آیه بیشتر در میاد از این تقاثیر که این کار حکام یهود بوده لیکن در روای ما وقتی آبوده صحب منع شده از بحث حکومتی خارج شده خوب دقیق بکنه ما باشیم و زواهر این آیات و این دواییات این چندتاش این مال و حکام بوده رشده ایفر حکم مال و حکامه اما سمن الخرد مال و حکام شراب اون سخته اون بحث اجتماعی نیست بحث حکومت نیست لذا باید مثلا احتمال داره اینطور طور بگید. که خود قرآن اصل سخت در یک مریاس حکومتی مطرح کرده لیکن بعد توسط پیغمبر احسان تأمین داده شده اون بقیق کردیم سخت به مطلق حرام و اصل این کلمه صحبه منی دفعه از کردن یه مرضی در میده پیدا میشه سهن به انسان نابود این مطلب رو ایشون هم داره برای بعد ایشون بگه و اصل صحب در این تصفیل جعه مرد مولا است مجداری تبریه انصافا مولا است هم تاریخ شیلی کتاب نافعی همین تصفیلش و اصل صحب کلب و جوع یا بشینن جوع کلبی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 الفيضو دیدن میتوره لا یلفا نمیشه بعد دیدن یعنی ادراک نمیشه وابدن الا جائعا همیشه گرسنه است مثل معاویه که چون پیغمبر نفس نمیش کرد می تا که خسته میشد با خسته شدم سیر میشد لا یلفا ابدا خیلی تصویر همیشه گرسنه از کلب جو کلبی هر چقدر میخوره سیر نمیشه و این نماقیل رشت از صور تشریح که هم همه بالمسترشی منش شرح که تیگه دنبال رشت که داتن دیگه جمع میکنه منش شرح الى اخذ شهوت و تمع داره به اخذ ما یعطا هم مثل الگی بالمسخوت المعده مثل انسان که مسخوت المعده اصلش یک مرضه در معده منش شرح الى تاام یقال و من و دو از ست یعنی به بعد میگه یعنی علبی قد سلحو به یا به در قرآن هم بکار بود به اطا... ب... عذاب و تقول العرب للحالب در حلاق یعنی اصحط شر چرمی موی منه به سهت یعنی اندیخ بزن خیلی از حرف شعر یعنی مو رو از بیخ، از ای رو از ریشهش میکنه پس این که به صوت گفته شده کنم از ریشه بنیاد دین رو میکنه سایدن هم من, من, صایدن. صایدن من نه اون که صرفه و سهد سهد اونم دیگه از کردن علاوه کردن ایشان باز مردار زیادی از اقوار امرده ببین از مجاهد داره از کارند سود قال عرش شافظه خب و هم یهود باز دو مرتبه از عبدالله هم را داشت از عبدالله این در اطلاق عبدالله مسعوده قال از کارند سود از سود عرشه دیگه شما بحث تمام شد بحث تمام شد فران شده بردیه بحث رو. و سلال الله و رضایه و رسول الله و آدهه و آده حدیث سر حدیث من که اصلیه فرهنگ هست. میگه ماش که الان تو مجلس اما می... آه آه اشتباه کرده، یک صفحانیم آقای خویی آقای خوبی یک صفحانی راجع به این صحبت کرده آقای توسطری کمتر خواستم من متعرض میشونم همشون شده. اگر تواشیه با بلنه همه رو بمروان کمی نده بله تو نشیخه در کل تو فری هم یاده بله تو مشکهش همون ناظر به فرقیه اون اشتباه یک جادا رویه هماره مروان اصلا ایشون هیچ رویه که از مروان نه کلبی نه, نه همین رو هم. و رویه مروان کلبی همین ساده و که خواست مشکه میسه مواقع نفیه هماره مروان کلبی نوشته ناظر به همین حدیث این از من محسوب به اسمش کرد. از سالشی میشه. آن عبی ایوب، آن امارة مروان. توی سال کل بینی اخیر این در خود فقیه یک جایی یک حدیث داره. علی حسن و ان عبی ایوب، آن امارة مروان. مجموع کل بین نداره. دفع نکنی. در حقیقت صدور طریقی داشته به امار ابن مروان مطلق خودش که یک جا کلی خیال کردین هم همون مطلق ولی یک مورد آمده ولی زم نگاه کرده مکان افیان امار ابن مروان کلی یعنی این رواسته بعد دیده اون سندی که چون داره خود فقیه هم داره حضرت محبوب این عبیعی و اون توش قیلی کلبی نداره لیزا توی سند کلبی رو نیبود اون اموار مروان کلبی که اونجا جایی شما و به عنوان رویه هم برده از کتاب محاسن گره ده. چون همون رو ها در کتاب کافی هست در کتاب کافی هست اموار مروان مطلق اشتباه تو محاسن واقعی از محاسن آمده به کتاب فقی توی کافی هم نیست کلبی هست چی هم برقیه اشتباه تا اینکه اون ابولون مشهوره از اون کلبی نیست. این یش پوری ما یه کلبی دیگه مثل محمد بن مروان داشت حالا پیر فرامواحسن اشتباه که نسخه خالص میده. شده یک مشکل اینه که ام